اعوذ بالله السميع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین از صلات و و على نبی و عزیزان دانشجوی خودم عرض سلام دارم روز بخیر خیر عرض می انشاءالله که از نعمت صحت و سلامت به طور کامل برخوردار هستید و انشاءالله که از هر گونه گزند و بلایی هم به دور باشید حلول ماه مبارک رمضان را هم خدمتتون تبریک میگم انشاءالله که از فیوزات این ماه برخوردار باشید و بهترین تقدیر را هم خداوند براتون رقم بزن ما جلسهمون به دلیل اینکه نیم روز قرار بود جلسه ای ما داشته باشیم به این ساعت منتقل شد ولی متاسفانه به دلیل این کرونا جلسه ای ما رو لغو کردند و دیگه منم دسترسی نداشتم خدمت شما بگم بذارتنموند و هر جلسه ما رو به هفته آینده منتقل کردن پس خواهش می‌کنم که هفته آینده هم لطف کنید این ساعت لطف کنید این ساعت بازم بگم معذرت میخوام لطف کنید این ساعت خب بسم الله الرحمن الرحیم ما به بیت 27 از قصیده رسیدیم خب داره مدهه آقای سیف دلار رو شروع میکنه میگه رعی تو که محزل علم محض قدرت ولو شأته کان له الملک محمد ولو کان له الملک محمد مت قشنگی می‌کنه میگه تو در عین حالی که قدرت داری هزمت داری میتونی هر کسی رو در هم بکوبی ولی در عین حال حلیم هستی، سبور هستی و مجسمه بردباری هستی میگه اگر بخوای میتونی هلمت رو تبدیل به شمشیر تیز کنی ولی تو چنین نمی کنی هلم خب یه لحظه قطع شد سرور دوباره وصلش کردیم از کردیم که محند یعنی شمشیر ساخته هند شمشیر هندی درست شد یعنی در واقع صفت یعنی از سیفل که خب این صفت جای موصوف میشینه محنده دیگه به عنوان شمشیر هندی بکار محز الهلم محز یعنی خالص محز الهلم از نا اضافه صفت به موصوفه یعنی الهلم الخالص پس میشه رعای تو که الهلم الخالصه من تو رو حلم صد درصد خالص دیدم فی محز قدرتن یعنی فی قدرتن خالصتن در یک قدرت خالص در یه قدرت صد درصد یعنی من تو رو حلم صد درصد دیدم در حالی که در قدرت صد درصد هستی چون بعضی آدم ها حلم دارن قدرت ندارن بعضی قدرت دارن حلم ندارن تو در عین حالی که حلم داشتی اونم صد درصد خالص قدرت صد درصد هم داری ولو شعته اگر میخواستی با لو میگه تو که چنین نیستی که بخوای نیر باشی و شمشیر هندی ولو شهتا کان هلم من که ال محمده که شده محمدا به خاطر شهد. اگر تو میخواستی هلم تو تبدیل به شمشیر هندی میشد از جانب تو یعنی هلم تو در درصد اون هم قدرت محض میشد پس من تو را محض شکیبایی و بردباری در محض قدرت و توانایی میبینم دیدم و اگه میخواستی شکیباییت را شمشیر هندی قرار میدادی آه شکیباییت رو شمشیر هندی میشه خب پس در واقع داره سیف و دولر رو بعد میکنه و اینکه تو میتونی کشتن با شمشیر رو جای صبر و صدوری خودت بیای. خب، رعایت کن، محزل هرم یعنی علیه خالص. یعنی من تو دیدم در حالی که صبر و شکیبایی صبر و شکیبا بودی خالص صد درصد اون هم صبر و شکیبایی که در عین قدرت محض بعد میگه ولو ها صبر و شکیبایی که تو دل قدرت خوابیده اگر تو میخواستی همین حلم و سبر و شکیبایی تبدیل به شمشیر هندی رو خیدید. ولو شئتا کانل حلم و منکل محمد. خب چیز ویژه ما توی این مطلب ندیدیم او رو مد کرد. حالا میگه تو در عین اینکه قدرت داری صبر و شکیبایی داری. خب؟ این نیستش که تو صبر و شکیبایی از سر بیورزیگی باشه تو میتونی همین صبر و شکیبایی رو تبدیل به شمشیر هندی کنی قدرت محض خوب دیگه نکته خاصی نداره و ما دوی که و ما دتلل احرار کل افعان همو و من لکه به دهر لزی یحفظ و گفتش که تو صبر محضی بردباری محضی تو شکیبا هستی اگر میخواستی میتونستی به قول خودمون صبر و شکیبایی رو تبدیل کنی به قدرت محض و بشی قدرت محض ولی تو اینطور نیستی تو در واقع اون صبر و شکیبایی تو بر وجود تو میچرب. انتقام گیر نیستی حالا این دنبالش میگه و ما قتل اله احرارم کلعف و انهم آدم های احرار جمع هره آدم های آزاده را نکشته است چیزی کلعف و انهم مثل اینکه اونها رو ببخشی اگر یک آدم پدر مادر دار و آدم اهرار رو هر رو تو ببخشی آه او به تو بدی کرده تو از خطاش بگذاری هیچ چیزی برای او سختتر از این نیست که چرا من این حماقت رو کردم در حق او بدی کردم و او این لطف و رحمت رو در حق من کرد و ما قتل احراره ما مای نافی از قتل اله احراره خیلو این کلف اینجا شاید مثال نحوی داره این کاف اینجا اسم به معنای مثل و فائل قتل است یعنی و ما قتل الاحرار مثل الهف و یعنی شیء مثل الهف و چیزی مثل اف نتوانسته از اهرار را از قادر آغاره اله اهرار جمع هور آه در اینجا هور به معنای جوانمرد مرد آدم پدر مادر داره روش در مقابل آدم پسته هر اینجا در مقابل عبد غلام نیست آزاده اینجا یعنی آدم پدر مادر دار شناسنامه دار آدم سالم که سرش به تنش میارزه در مقابل بنده نیست پس هیچ چیز مثل و گذشت از آدم های آزاده و گذشت از آدم های آزاده ها رو نمی کشی. یعنی آدم های آزاده آه. مرگشون به اینه که جایی بدی کنند و طرف قدرت انتقام داشته باشه اونا رو ببخشه مثل تو بعد میگه ومن لکه به لحر لذی یحفظ رو یدا مفعول یحفظه اینجا مجاز مجاز مرسن به علاوه سببیات یعنی نعمتیت یعنی نعمت یاد یعنی گاه یعنی اوقات به معنای قدرت به کار میره مثل که ید الله فوقعیدیه یعنی قدرت گوی اوقات یاد به معنای نعمت به کار میره لطف به کار میره دست فلانی بالای سر ماست یعنی لطفش بالای سر ماست. اینجا اونه میگه و من لکبل هرر لذی، درست شد چه کسیست برای تو جوان مردی که حق نعمت رو نگه داره؟ میگه اون هرری که نعمتی که تو در حقش میکنی نگه داره و بفهمه چه تو لطفی در حقش کردی اون که ویلا تو آدم بسیار بزرگی هستی میتونی انتقام بگیری؟ خطایت کسی رو سزا بدی نمیدی و او رو با عفت ادب میکنی و میکشی ولی آدم پدر مادر داری که این حرف رو بفهمه و این نعمت رو حفظ کنه کجاست برای تو یعنی مردم قدر تورو نمیدونند ش یعنی هر کسی بیاد یه جوان مردی رو یه آدم پدر مادر داری رو مورد عفت قرار بده در مقابل اینکه او به او آزار و کرده اون میشه مطیع و بنده و با قول خودمون قلامه و کشته او او میشه درست شد و متنبی میگه تو این کاری ای. تو به مردم رات میکنی رو از خطا میگذری ولی مشکل سر اینه کسی که حرمت این نعمت رو نگهداره کجاست درست شد اون کسی که اینو سرش بشه و این ارف و بخشش تو رو بفهمه کجاست خب و من لکه آه این من من استفامی است یعنی ایو شخصن لکه تو کیو داری؟ بلهر که هر باشه اونم هردی که یحفظ و لیت که حفظ می بگید اون نعمت و لطفی رو که تو بشکر. اون نعمت و لطف کدومه؟ این تو میتونستی عدبش کنی میتونستی او رو بکشی با حلم و سبوری دور رو نکشتی و عفش. و من لکابل هر لذی یحفظ و یدا خب و من لکابل هر لذی یحفظ خب یه اسطلاح ها مثلا پایین نگاه کنید تو چیزتون میگه که ید نعمت درست داره میگه و من لی به کذا من لی به کذا یعنی من لی مثلا بالقراعته من کیو دارم که برام قراعت کنه؟ به من لی به کذا؟ مثلا من لی به من لی به صداقت کیه که برای من دوستی بکنه؟ خب این من لی به کذا یعنی من یک لی به کیه که فعالیت کنه برای من عهده دار بشه برای من اینو یعنی کیه که برای تو نمک شناسی رو به عهده بگیره کدوم حری هستش که در حق تو نمک شناسی رو به عهده بگیره قدرشناس شناس باشه که تو عف کردی او این رو قدر بده و ما قتل الا احرارا کلا عنهم و و عفه و اون کلا گفتم از نظر نحوی کاف به معنای مثل یکی از شاید مثال‌های حرف جرد کاف اینه که به معنای مثل میاد. و اینجا مضاف شده به علاقه. و کاف فائل عطن است. میگه تو تمام اونهایی رو که پدر مادر دارستن سرشون میشه اونها رو همه رو با عفو بخشه شد بگو. خازه خودت کردی. قتله یعنی کشتیشون یعنی همه اونها. خوازه و مرده ای تو هم. چون عف باعث میشه که آدم پدر مادر دار کشته مرده آدم بشه ولی کیه که اینقدر رو بدونه و ما قتل اله احرارا کل اله و من لکر از یه قانون میگه میگه که آدم های احرار رو عف و بخشش اونها اونها رو به زانو در میاره اونها رو مطیع میکنه. بعد میگه تو این کاره هستی ولی کو آدم هرهی که تو رو بدونه خبی و من لکبل هره لذی یحفظ و الید. تو این بیت باز روانشناسانه برخورد میکنه میگه ازا انت اکرم تل کریمه ملکتا میگه قانونیه. ازا انت اکرم تل کریمه اگر تو آدم کریم کریم یعنی همون هر یعنی پدر مادردار جوان مرد اصیل اگر تو آدم اصیل و پدر مادرداری رو جوان مردی رو اکرام کنی احترام کنی ملک تکون مالکش میشه علام میشه همون چیزی که میگفت بالا کشتیش یعنی مطیه میگه اگر تو آدمی که سرش به تنش میارزه که در مادردار جوان مرد اکرام کنی ملکته جواب ازاز و این انت اکرامت لعیمه تمرده اما اگر تو بیای و اکرام کنی به آدم لعیم اونجا کریم در مقابل لعیم اونجا گفتیم هر در مقابل لعیمه این پست اما اگر بیای اکرام کنی آدم لعیم رو آدم پست رو تمرده تمرد میکنه آسیان اون پر رو میشه بیشتر چنگ و لغت یه مکته تو این بیت هست خیلی قشنگه میگه اذا انت اکرم تل کریم میگه آقای صف و بدون اگه آدم هر و آزاده و کریم و جوان مرد رو اکرام کنی احترام کنی دست به سر گوشش بکشی عفتش بکنی این ملکت هم این نمک میخوره و نمکتون رو نمیشه اما و این انت اکرامت اما اگر تو اکرام کنی آنم لعیم و پستو نامرد رو ناجوانمرد رو اگر او رو اکرام بکنی تمر رو او جفتک انداخته گفت فرمو خواهد شد و بیشتر نمک رو میخوره و نمکدان رو میشه به اصل ذات اون طرف برمیکرد نگاه کنید توی شرط و جواب مصره اول میگه ازا انتا اکرمتر کردیم با ازا میکرد ازا برای شرط مستقبل محقق الوقوعه یعنی وقتی میگه اذا جاء نصر الله و یعنی حتما نصر خدا میاد فت خدا میاد هر وقت اومد تو فسب به جوابش اگر من به شما گفتم اذا اتای تو درستو در رستو. شما میگید این حتما میاد چون گفت اذا اتای تو سباهن ها در رستو. اگر صبح اومدم درس میدم اما این اگر نیست یعنی هر وقت وقتی که صبح اومدم درسان یعنی قطعی پیش اما اگر گفتم این عطایت تو سباهم در رسال این مستقبل محتمل و بوبه. مستقبل محتمل و بوبه. گرفته چی شد؟ حالا هر دو ازا نیست که ان یکی ازا چی میگه؟ میگه اذا انت اکرم تل هنگامی که تو آدم پدر مادر دارو و درست رو اکرام و اعزاز میکنی ملکت رو مالکش میشی یعنی تو کارت همیشه اینه آدمای خوب رو بگید احترام میکنی و اگر احتمالا آدم پستی رو جایی احترام کردی تو پوست خودش نمیکنی چه تمرده شده تمرده قشنگ این مطلب رو کرد. به بیت قبلی ارتباط داشت ها اگر هنگامیک تو جوانمردی رو اکرام کردی و گرامی داشتی مالک اون خواهی شد اون مطیع تو میشه ولی اگر پست و فرو ای رو احترام کردی اسیان میکنه و از پوست خودش میره بیرون و پررویی این بیت در واقع تحکید بیت قبله دیگه یعنی داره به همون مطلب رو اداره کن این بیت رو با ما ضرب المثل هم به کار می خیلی از عرب خواه. بریم سره بیت بعد چون دیگه راحت نسبت ازا عن تا اکرم انت ازا و این ان انت اکرم حتما بلدید که این انتر فاعل یک اکرم فعل مقدره که این اکرم تفسیرش میکنه چون بعد از عدات شرط ما فعل شرط میخوایم و این انت رو نباید شما به عنوان مبتدا بگیرید این رو تو نصب خوندید به میگن باب تفسیر ملک هم جوابش بیت بعد میگه و وضع اون ندا فی موضع سیفه به لعلا مزران که وضع فی موضع ندا همون مطلب بالا رو میگه میگه آدم باید هم حلم داشته باشه مثل تو هم قدرت حلم رو در جای خودش بکار ببره بر آدم های احرار عفتشون کنه و اونها رو مالکشون بشه و قدرت رو هم در جایی بکار ببره بر آدمهای های لعیم که اونها حفظ ید و حفظ نعمت نمیکنن اونها رو باید با بعد بالا تو بیت بد همون بیت ازا عنته گفت اگر شما جا به جا به کار ببری آ خراب میشه یعنی شما بیای اکرام بکنی یا آدم لعیمی اون تملذ عصیان میکنه و پرو میشه اینجا میگه و وضع ندا باز داره قایدره ندا یعنی لطف و کرم عطا لطف و چرا و وضع الندا فی السیف شما کرم رو بذاری در جایی که باید سیف رو می گذاشت شمشیر لطف کنی در جایی که باید گوشمالی میکنی این مزرون بلعلا بلعلا متعلق به مزرون اون وضع مبتداست این مزرون خبرش اون فی موضع هم متعلق به است قرار دادن لطف و کرم در جای شمشیر و شلاخا در جای شمشیر و بشمالی این مزرون بل اولا اولا یعنی بلند مرتبگی این به بلند مرتبگی و عظمت انسان زرر میزن. که مثل قرار دادن سیف شمشیر فی موزه ندار شما بیا شمشیر بذاری جایی که باید دوتو میکرد اونم مزرون بل اولا اونم بلند مطلبی را از بینیدن پس اگر که ما لطف رو در جای غضب قرار بدی این زرر میزنه غضب رو در جای لطف قرار بدی اون هم بگید زرر میزنه و وضع ندافی موضع سیفه دل اولا موضع رو که وضع السیف در موضع ندا مثل فرار دادن سیف در موضع ندا که مضرن ايضا هم مضر است نهادن بخشش قرار دادن بخشش به جای شمشیر مزر است برای بزرگی و سروری و امیری و آقایی و فرمانروایی برای بزرگواری همونطوری که آ بزرگی و سروری درست شد آزار می‌بینه وقتی شمشیر به جای بخششگری بیاد یعنی هر چی سر جای خودش قشنگه لذا از امیرالمومنین سوال کردند که عدالت چیه گفت عدالت گفتند عدالت چیه گفت عدالت اینه که هر چیزی سر جای خودش ادالت یعنی هر چیزی سر جای خودش ظلم یعنی چی؟ یعنی هر چیزی سر جای خودش نبود خب و وضع ندا فی موضع سعیفه بل اونا که وضع سعیف فی موضع ندا یعنی هر کسی رو باید استحقاقش عمل کرد جایی که حلم است باید حلم کرد جایی که قدرت هست باید قدرت نشون تا ادالت برقرار باشه هم که گفته مضرن بل الی یعنی به بزرگواری تو ضرر میزنه یعنی اینکه ارکان حکومت رو به هم می‌ریزه یه حکومت اگر در جایی که باید بخشش کنه بکوبه و در جایی که باید بکوبه بخشش کنه این سرپا بای نمیسته خب دیگه چیز خاصی نداره و من پرسجم مشخص همون بیت قبل رو بذاره توی ستا بیتی که ما خوندیم هر تا یک چیز رو بیان کرد که هر چیزی سر جایش خوبش خوبه تو حلم داری در عین حال قدرت داری هلمت رو سر جا به کار میبری قدرتت هم سر جا اگر بخوای ببین با لو گفتون بیت گفت ولو شه یعنی تو این کار نمی کنی. لو شرط محاله اگر به فرض محال میخواستی شما خب حلم رو تبدیل به شمشیر هندی کنی یعنی جای حلم شمشیر هندی بذاری میتونستی ولی نمیکنی ولاکن این یعنی ولی استدراک می ولاکن تفوق و ناس رعین و کما فوق و و نفسن و محل تدا ها همه تمیزند. منسوب ها همه تمیزند میگه ولکن تفوق الناس فاق و یعنی برتری یافت فضیلت پیدا کرد درستو ولی تو از همه مردمان از لحاظ رعی یعنی فکر و عقل و از جهت حکمت و دانش بالاتر، تو از همه بالاتر، از این لحاظ عقل و حکمت تو از همه بالاتری همون طوری که تو از اینها بالاتر هستی از جهت حال نفس از نظر ذات خودت از نظر حال و حالات خودت و از نظر اصل خودت تو در نفس خودت در محدد محدد یعنی اصل تو بالاتری تو از همه بالاتری نجادت برتر تو از سادات بوده علی ابن همدان از نژاد برتر عرب بوده از لحاظ جسمی برتر بوده خلق و خوش هم که گفتش که تو حلم محضی در قدرت مذبی تو از همه بالاتری که ما فقطها و محالن و نفسن و محل دیدن خب چیز خاصی نداش، از تو نصب تو هم که بالاتری همه کلماتی که تو این بی هستند تمیز هستند. آه همشون تمیز هستند. که تو برتری داری بر مردم از چه جهت یا جهت عقل و حکم همونطور که برتری داری از لحاظ نفسانیات از لحاظ حالات و خلق و خلق و از لحاظ درست شد یعنی اصل و نجان کلمه محدد یعنی اصل ازاد خب این هم خیلی شعر راحتی این شعر را چرا کفت یعنی بعد از اون شعرهای قبلی که اگر به این در جایی که باید لطف کنی لطف نکنی شمشیر بذاری در جایی که باید شمشیر بذاری لطف کنیم این به علاوه و بزرگی زرر میزنه و بعد هم گفتش که این کریم رو اگر انسان اکرام کنه اون رو مالک میشه اگر این رو این گفت اینو واسه چی بهده از اونا گفت اینو واسه این میگه ولیکن میگه ولی میگه ما درسته این نصیح رو کردیم این قواهی رو گفتیم ولی تو اینطور نیستش که در رفتارت اشتباه کنی ولی ولیکن یعنی ولی تو همه اینها رو رعایت میکنی، تو در عقل و دانش از مردم بالاتری تو در خلق و خوی و اصل و نژاد بر همه برتری داری پس بنابراین تو چنین نخواهی کرد اینو به خاطر این داری می کنی ولیکن تفوق ناس و حکمتن کما فوق تخمب فوق، یفوق فوق تهم مثل فوق هم مثل قطب اجففه که با فوق هم همونطور که تو تفوق داری بر مردم از لحاظ حالات خودت و از لحاظ نفسانیات خودت و از لحاظ اصل و نجات. خب اینجا یه بحث دیگه را شروع گفتش که تو از لحاظ عقل و فکر و دانش بر مردم برتری داری درست؟ حالا ببین چی میگه؟ میگه یدق قعلل افکار ما انتفائلون و یا ترکو ما یخفا و یا ما بدا خیلی قشنگی بعضی کلمات تو این دارای تضاد هستن مثل یترکو با یوخزا یترکو با یوخزا مثل یخفا با بدا یترکو یعنی رها میشه یوخزا گرفته میشه یخفا پنهان میمونه بدا ظاهر میشه این که دو تا چیز بیاد بعد دو تا چیز دیگه بیاد و متضاد بنابر بنابر ترتیب به ترتیب اینو میگن صنعت مقابله صنعت مقابله آیه برمیگرده به یوترکو با اون بدا برمیگرده به یحفا مثلا فلی از حکو قلیلا فلی از حکو قلیلا و لیبکو قرآن از حکو میگه این افراد نابکار باید دادهه بشیینن خیلی گریه کنند و کمتر خنده به لبشون بیایر اگه بدونن چه اقامتی دارن فلی از حکو قلیلند ولی ابکو کسیرن دو تا دوتا هست تا هز ستا تا از۶۶ تا هم هست صنعت مقابله این دو تا دوتاش صنعت مقابله داره میگه یتقال افکار علال افکار یعنی افکار الناس. یدقو علال افکار یدقو یعنی باریکتر است بر افکار نمی توی افکار مردم چی ما انت یعنی ما انت فاعلون آن که تو انجامش میگه کارهایی که تو می این دقیق تر است بر فکر مردمان، یعنی فکر مردمان به اونجا نمیرسه. حکمتش رو درک نمیکنه. کارهایی که تو می کنی پشتش 100 تا فکر و نقشه خوابیده، این افکار و مردم اونو نمیفهمن. آنچه که تو انجام میدی خیلی زریفتر دقیق یعنی ظریف دیگه، دقیقتر و زریفتر است، که در افکار و اوهام مردم بگنید بنابراین چون کار تو خیلی از فکر و ذهن مردم بالاست و یترک ما یخفا پس ترک میشه خیلی از اون اغراضی که تو کار تو هست و پنهان یترک ما لو. یخفا. ترک میشه اون چیزی که من. مردم نمیفهمن همه اغراض تو رو خیلی هاش ترک میشه و یاخذ و مابد بدا یبدو یعنی زهر بعضی چیزاش هم که ظاهر میشه بعضیشون میفهم یعنی هر کار تو تا قرص پشتش خوابیده سی تا قرص پشتش خوابیده خیلی تر و تر از برافکار مردم این مردمان بخوند بنابراین بیشترش که مخفیه از اون عقراس و اهداف رها میشه اصلا نمیفهمن و یه چندتایش هم که ظاهر استو و معلوم است مردم سر ازش در میر. خب دیگه، مطلبش ساده است گفتش که تو انقدر عقل و دانش بر و مردم بالاست ها که اصلا قابل هاست و مردم نیستی تفوق و فوق تفون بنابراین بنابراین کارهایی که تو میکنی این کارهایی که تو میکنی به گونه که اینها 80 ترصدشو نمیفهمند کنار می‌گذارند، 20 ترصدش هم میفهمن و میگه خب این هم تموم شد و صنعت مقابله توش بود و زیبا هم بود یدقو علال افکار یدقو یعنی ظریف می شود دقیق می شود بر افکار مردمان ماهی فایل یدقوش آنچه که انت فایلون انت مطدد خبر آید سلف افتاده یعنی انت آ، آنچه که تو انجام به هم نشست. اون کاری که تو انجام دارید میدی این دقیق تر است دقیق می‌آید، ظریف زریف می آید بر فکر مردمان این فافای نتیجه است بنابراین چون از سطح فکر مردمان بالاست بنابراین یا ما یخفا بنابراین رها میشه اونچه که مخفی است. خب و یا ما بدا و گرفته میشه اونچه که ظاهر مردم یعنی اصلا متوجه نمیشن اون مقداری که مقفیه و اون مقداری که ظاهر میشن و مردم میفهمن و میرون میفهم. و گرفته میشه آنچه که ظاهر است نقطه خیلی مهم بود داره او مد میکنه به چی؟ به این که تو از نظر سطح فکری خیلی بالایی کارهایی که تو میکنی بر فکر مردم صریفه فکر مردم به این اغرازش نمیرسه لذا یه چیزش رو میفهمند، ذکر میکنن خیلی نمیفهمند، نمیفهمن بگید رها کن نگاه کن بیت باید و قشنگی از ال حسد علی حساد انی بکبتیم فانتال لذی سیرتهم لی حسدان لی متعلق به حسدنه سیر تا یعنی جهل تا هم جهل تا سیره به معنی جعل است. ازل فعل امر از ازاله یوزیل و, و ازالتن ازاله یعنی چی؟ یعنی برطرف کرد پاک کرد ازاله یعنی پاک کردن ازاله یوزیل و ازالتن. حسد مثل حسد هر دو جمع حاسده حسد و حسد هر دو جمع حاسده یعنی درهم کوبیدن چبت یعنی درهم کوبیدن، چبت یعنی درهم کوبیدن. حالا با توجه به این لغاتی که معنا کردم و اعرابی که خواهم گفت شما راحت میتونید شعر رو معنا کنید ازل یعنی از بین ببر برطرف کن. حسد الحساد حسادت کردن این حسودان را حسد حساد مبهول است فائل شمنتای مستدر. آقای سیف الدوله از بین ببر حسادت کردن های این حسودان را از بین ببر از کی؟ از من از بالای سمیه یعنی شر حسادت این حسودان رو از سر من کم کن با چی کم کنه؟ به چپت با درهم کوبیدنشون این حسودان رو با درهم کبیدنشون با خار و ذلیل کردنشون با تو سری درهم در همکوبیدنشون از سر من کم کن از حسد الحساد برطرف کن از بین ببر حسادت کردن این حسودان رو از من با به چپته هم با در کوبیدنشون. این فعر یعنی زیرا چون انگار سیفت گفته اینا دارن حسود تو اند حسادت به تو میکنن چرا من بیام اینها رو در هم چرا من بیام اینها رو در هم بکوبم؟ میگه چی؟ جواب میگه میگه فعنتل لذیب چون تو کسی هستی که سیر تهم قرار دادی این حسودان رو خسدن لی حسادت کنندگان به من تو اینا رو انداختی به جون من تو اینا رو حسود من کردی خودت هم شررشون رو کم کن حالا چه جوری شده که اون اینا رو حسود کرده میگه تو هی به من عطا کردی هی به من لطف کردی هی به من درهم و دینار دادی هی به من اطاب و کرم کردی؟ این حسودا نمیتونم نمیتونن ببینن این رو تو انداختی به جون من خودت هم شرلشون رو از صرف من کم کنه فهمیدید چی گفت؟ خیلی میگه چی؟ از حسد برطرف کن از بین ببر حسادت کردن این حسودان الحسد این حسودان رو که حسودان هستند، این همه حسود که دور منه حسادت اینها رو از بین ببر از من برطرف کن از من اندی. به چپ به با در هم کوبیدنشان یعنی این که اینها رو در هم می کوبی اونها رو حسادتشون رو از سر من کم کن زیرا زیرا تو کسی هستی که آن سیر تحملی حسداد تو کسی هستی که اینها رو حسود من کردی تو کسی هستی که اینها رو حسود من کردی درسته؟ <کت> <puck> یعنی تو اینقدر به من لطف و کرم کردی اینا نمیتونم ببینن این بلا رو تو به سر من آوردی خودت هم اینها رو بگیرید شلشون از سر من به کبت هم کبت مستر اینجا اضافه شده به مفعولش م؟ <م> یعنی به کبت که ایاهم با با درهم کوبیدن خودت اینها رو فایل مستر نیمده مستر اضافه شده به مفعولش با درهم کوبیدنت اینها را این حسودان را دیگه چیزی نداره مبحث مشخصه فقط نکته شید بود که گفت این حسودا رو تو برا من درست کردی اگه تو به من این همه لطف کرم نمیکردی. آ، اینها هم این همه ازادت با من نمیکردند. تو اینها انداختی به جان من خودت هم شرلشون رو از سر من کم کن بعد چی میگه شد زندی خسن و رعی کفیه مون زرب تو به سیفن یقته الهامه مقمده ازا <تصفح> <تصفح> شد زندی خسن و رعی کفیه مون تو به سیفن یقطع الهامه مغمدا زند کلمهش بازو زند یعنی بازو اینجا زند که بهکار میرهن بازو هام جمع هام است یعنی سر حامه میشه کاسه سر قبلا هم گفت مقمد یعنی قلاف شده خب شد یعنی محکم کرد ازا گفته که ازا بهتون گفتیم ازا شد زندی حسن و رعی کفیه زرفت و به سیفن یقت و لحام مقومدات ببینی چی میگه میگه ازا ازا شد زمانی که محکم کند ازا شد زندی بازوی من رو اگر بازوی منو محکم کنه انگامی که محکم کند بازوی من رو حسن و رأی حسن و رعی زیبایی نظر تو فیهم در مورد این حسودان یعنی اگر من بفهمم که تو نظرت اینه مثبت فکر میکنی برای درهم کوبیدن این از حسن و رعی فیهم یعنی فی کپتهم اگر من خوشباوری تو رو حسن زن تو رو حسن رأی تو رو در این حسودان در, در همکومیدن این حسودان باشه این محکم میکنه بازوی منو یعنی اگر من بفهمم که تو آقای سیف الدوله میخواهی به خاطر من این حسودها رو گوششونو بگیری گوشمالی بدی همین حسن نظر تو در مورد گوشمالی کردن اونها بازوی من رو قوی میکنه این زیبایی نظر تو درباره اینکه اونها را ادب کنی باعث میشه که بازوی من محکم بشه و اگه بازوی من محکم بشه با زیبایی نظر تو در مورد در هم کوبیدن اونها چه مشنغه ضربت تو به سیفن خودم میزنم با شمشیری که یقطع الها تمام سرها رو میپرونه این یقطع هام صفت سیفه خودم با شمشیری میزنم که تمام سرها رو میپراند مقمدن اونم در حالی که تو غلافه یعنی از غلاف بیرون نیورده با شمشیری که در غلاف است من تمام سر اونها رو از جدا میکنم یعنی الان مینه چی میخواد بگه میگه این حسودایی که توی به من حسادت میکنن همینا یعنی که تو کاخن می هی تو به من لطف کردی، تو به من لطف کردی، به من لطف کردی. اینا هی منو انگولک میکنن، اذیت میکنن. تو اینا در هم بکوب. انگار سیفالدوله میگه خو خود خودت چه چیز نمیکنه میگه من میترسم اینها تو بهشون یه حسن زنی داشته باشی. اگر من بدونم که تو زیبایی نظرت درینه که اینها رو گوشمالی بدی به خاطر سعادتشون نسبت به من، خودم با شمشیلی که توی قلاف هست، گردن همه اینها رو خواهم خودم با شمشیری که در غلاف هست گردن همه اینها رو خواهم زد. ازا شد زندی. زندی مفعول شد است. زمانی که محکم کند. بازوی من رو حسن و رعیه که زیبایی نظر تو فیهم در مورد این حسودان. زیبایی نظر تو در مورد این حسودان یعنی در مورد این حسودان که در هم بکوبیش اگه من نظر مثبت تو رو در مورد در هم کوبیدن اینها بدونم این بازومو صفر میکنه اگه من نظر مثبت تو رو در مورد نظر زیبای تو رو در مورد در هم کوبیدن اینها بدونم همین این باعث میشه که بازوی من محکم میشه اون موقع من ضربت تو جواب احساس میزنم به صیف با شمشیری که یقطعها همه سرها رو از جدا میکنه این شمشیر مقمدند اونم در حالی که در غلاف است این حال است از برای فایل یک تاو. که برمیگرده به سیف رابط جمله صفت در میزنم با شمشیری که این یعنی الان میترسم میبینم نگاه میکنم مینم توی خود این کاخ تو به من هی لطف کردی لطف کردی لطف که این آدم هایی که کارمنداب و وزیر و وکیل و اینا همه به من حسودی میکنم پدر من در بردن یه جوری حسادت اینها رو در هم بکن بعد برگشتن میگه که ولی اگر من بدونم که تو واقعا نظرت مثبته که اینها رو به خاطر حسادتشون ادب کنی این خودش بازوی من رو محکم میکنه من گردن همه اینها رو با شمشیری که در غلاف باشه گردنها رو میزنه خواهم زن. یعنی خودم شرشونی کم میکنم خودم رو سرجاشون میشونم اگر بدونم که نظر مثبت تو در این زمینه هست ازا شد زندی حسنو این حسنو فائل است شد فائل شد زرفت تو جزای شد آمد. نهی که واقعا منظورشون بوده که ها. یعنی خودم روشون رو کم میکنم اگر بدونم که تو نظر مثبت دینه که حسادت اینها رو پاسخ بدی حسادت اینها رو جواب بدی اگر بدونم نظر تو همه همینه من میتونستم تو ناراحت بشی که این حسودان رو من شرشون رو کم کنم سرجاشون جاشون بشونم و الا خودم این پر روحا رو آنمشون میکردن زرب تو به سیفن یقت اولهامه مقمده این شعر بشون میکن مبالغه تو آ مبالغه شمشیری که تو قلافه بتونه همه زرها رو بزنه اون مبالغه است دیگه آ مبالغه کرده یعنی شمشیر من تو قلاف هم باشه حریف همه اینها هست ولی الان بازوم شله چرا بازوم شله شمشیرم کار نمیکنه؟ چرا خودم شردشون کنم به دلیلی که, که میترسم یه موقعی به تو بر اگر بدونم نظر تو واقعا در مورد اینها اینه که به خاطر حسادت چشون نسبت به من گوشمالیشون بدید خودم اینها رو سر جاشون خواهم نشان خیلی سپاس خب این هم این بیت بیت بعد رو نگاه کنید و ما انه الا سمحریون حملته فزینا معروزن و را اموسددادا عشق یا؟ داره به خودش بحق میکنه میگه منم که کنار تو هستم منم که کنار تو هستم ن راحت این دو دسته کلمه از چیزی نیست بقید همه هر بیت رو من ده دقیقه دارم لغتشو میگم اعرابشو میگم سمحری یعنی نیزه نیزهی که میوزه مثل من شمشیر هندی اونم میگن نیزه سمحری یعنی نیزه خیلی معروفی بوده ببینید معروز یعنی به عرض گذاشته شده معروز یعنی به عرض نهاده شده اینهایی که نیزه داشتند موقعی که میشستند روی عصد بعد در زمانی که نیزه لازم نبود آماده باشه این نیزه رو چکارش میکردن؟ به عرض میذاشتن روی ران هاشون نیزه رو به ارز میذاشتن روی رانشون و دهنه اصفو میگرفتن ران این نیزه که به عرض گذاشتن مثلا یه متر بیس سال نیزه بوده این روی رانشون میگذاشتن به عرض. چون اینطور باید قلافش میکردن و اینه گفتم بهش نیزه معروض یعنی نیزه که روی ران گذاشته شده به عرض اونم روی شطور. چی روی عرض راع یعنی خوفه راعه یعنی خوفه یعنی ترسون مصدد یعنی نشان گرفته شده برخلاف معروضه نیزه رو اینطوری به طرف نوکش به طرف جلو نشان بگیره که میخواد بندازه اونا میگن رمه مسدد پس رمه مسدد نیزهیه که نشان گرفته شده آماده رمه معروض اونیه که روی پا گذاشته شده روی ران به عرض و در حال و جنگی است. خب حالا اینو فهمیدی؟ میگه و ما انه میگه سیف و دوله و نیستم من جز الا انا مبتدا سمهریون خبر من نیستم جز نیزهای ای سمهری این حملتبو صفت سمهریه من نیستم جز نیزهای ای سمهری که تو همراه خود می داری حملش می حالا این که میگه من نیستم جز نیزهای که تو همراه خود میبری منظورش این نیست که من نیزم بهش میگم تشبیح بلیق یعنی عدات شرم تشبیح و وحش شبه افتاده مثل این که میگیم زید گل است زید شیر است یعنی مثل شیر است در جرات مثل گل است در لطافت اینم اینطوری بوده و من نیستم مگر مثل نیزهی سمهری در برش و از بین بردن یعنی خودشو تشبیه کرده به نیزهی سمهری یعنی انا مشبه سمهری مشبه هم بهه عداد تشبیح و ودشبهش افتاده بهش میگن وشت بلی برای تحکید این کار میکنه که میگه شیر است یعنی مثل شیر است در جورا. میگه من نیستم مگر ای که تو همراه خود میبری من مثل یه نیزهی هستم که همراه با تو باشه این نیزه فزینا معروزن پس این نیزه زینا زینت میکنه تو رو حیبت به تو میده تو رو میاراید معروزن موقعی که به عرض گذاشتی روی زانود روی رانهات داری میری حکیلی با کنید که عزبتی نیزه به عرض روی پاهای تو اسباب زینت توست یعنی عبهت تو رو نشون میده. و را و این نیزه میترساند هر کسی رو مصددن موقعی که نشانه گرفته بشه میگم از مثل نیزه سمهری هستم که اصلا خطا نمی کنه و کاملا نیزه درستی است مثل این نیزه هستن برای تو موقعی که این نیزه رو هم میکنی به روی ران بگذاری اسباب زینت توست و بعد تو رو نشون میدهر که نگاه کنه دهنش باز میمونن از این همه از موقعی که نشانه بگیری جایی رو باهاش آه اینقدر این نیزه دقیق است و قوی هست همه ازش میترسد همه ازش میترسد خیلی زیبا بود چیزه خاصی نداشت سمهری نیزه خیلی معروف و خوبیه درست شو؟ معروز یعنی نیزه که به عرض گذاشته رو پا مصدد نیزه که نشانه گرفته شده به سوی دشمن هدف گرفته شده. من جز نیزهی که آن رو حمل می کنی نیستم من مثل اون نیستم بنابراین در حالی که به عرض روی رانهای تو هست این نیزه مایه زینت و عظمت توست و هنگاه که اون روی عرض موقعی غیر جنگ گفته. و هر موقع هم که نشانه بگیری به طرف دشمن اون رو درست شد؟ وحشت آوره. خلاصه منظورش اینه من با تو هستم اسباب زینت تو و بال تو نیستم. برا تو خوبم. درست شد در زمان صلح زینت هستم برای تو، مت می میکنم مجلس گردانی براد میکنم فلان در زمان جنگم در کنار می جنگیان اسباب مو با قول خودمون وحشت دشمنان میشم تازه اونها رو حجب میکنم با شعر خودم آ اسباب وحشت اونها میشم سمهری هم که گفتیم که نیزه است که حالا که به یه نفره به اسم سمهر که اون نیزه‌ساز درجه یکی بوده درست شد یه زنی هم داشته اسمش رودعینه بوده آه اونم نیزه ساز بوده مثلا نیزه ها رو یا میگن سمهری یا میگن رودعینی بعضی‌ها حالا توی شعرهای جاهلی یا این برمار میبینید رودعینی که میگن یعنی منصوبه به ردینه است که همسر این سمهر بوده هر دو نیزه سازهای درجه یک بوده. درست شد نیزه سمهری و نیزه ردینی خب معروضا حال از برای زینه فائلش مسددن هم حال از برای راه فائلش فائل زینه و بر برمیگرده به این سمحری رس خوب یده چیزی نداره فهمیدیش اینجا داره خودش رو بالا میبری ارزش خودشم شاعر باید بگه دیگه که من کنار تو هستم آقای سیفالدوله چه ارزشی دارم خوب گوش کنید راحته و مد ده رو الاممن روات قائ و مد روات قارری اضاف گلت و شعرا از ده ده رو م روات, رو روات جمع راویه مثل غزات که جمع قاضل روات جمع راویه یعنی روایت کنند قصایدم هم جمع قصیده است میدونید اصفه اینجا به معنای ساره است یکی از معانی اصفه اینه که به معنای ساره میاد میگردد میشود منشد انشده یعنی شعر خواند، یکی شعر کسی دیگر رو بخونه میگن انشده شده شعر نه انشدنا شعر عبی تمام یعنی برای ما خوند شعر عبو تمام انشد یون و انشادن دو مفعولی هست انشد یون و انشادن دو مفعولیه یعنی چیز که میگم انشد تنی انشد تنی شعر المتنبی قصائد المتنبی یعنی تو برای من قصاید متنبی رو خوندی لوحال شو گفت حالا نگاه کنید میگه و مد دهرو اینجا منظور از دهر یعنی مردمان روزگار این روزگار از دهر منظور یعنی مردمان این روزگار میگه روزگار نیست این روزگار نیست مگر بعضی از راویان شعر من یعنی این روزگار قسمتی از راویان شعر من است. منظورش شعر چی؟ یعنی مردم این روزگار پاره ای از راویان شعر منم. یعنی مردم این روزگار روایت شعر من ها میکنه من شعر میگم اونا میخونم و مد ده روی لامن رواته ساریدی مردم و روزگار چیزی نیستند جز راویان شعر من بعد توضیح میده میگه اضافولل تو شعرم وقتی من شعری رو میگم من یه شعری یه ای رو میگم سارت ده رومان شده همه مردم شروع میکنم بخوندن شعر من رو میخونه خب توی بعضی از نسخه با قول خودمون این دیوان متنبی به جای قصایدی نوشته قلایدی. قلائد جمع قلاده است. یعنی گردنبندی که به گردن منداخت اونجا قصایدشو تشبیه کرده به قلائد یعنی مردم این روزگار فقط راوی گردنبندها و قلاده های من هم. منظور یعنی قصاید من که زیباست مثل گردنبند اگر تو نسخه جایی دیدید منظور اینه. استعار از قصایدشو تشبیه کرده به قلائ خب، چیز خواستی نداشت چی گفت خب مردم روزگار شاعر نیستن که آقای سیفت دوله اینایی که میان برای تو شعر میخونن هیچ کدومشون شعر خودشون نیست اینا همه شعر منم اینا همه سارق شعر منم شاعر منم و اینها شعرخانند اینها چی بگید شعرخانند من شعر میگم اینا شعر میخونند مردم روزگار نیستن مگر پاره ای از راویان شعر من هنگامی که من شعری به سرایم اذا گفتم چرن اسف و دهرمون شد همه مردم روزگار شروع میکنن به شعر خوندن هر وقت من شعر میگم همه شاعر میشن شعر خان میشن شروع میکنن به شعر خوندن از دهرو اسم است منشدن خبرش قلتو فعل شالته از اس به ده و منشدن جزایش از به ده و منشدن جزایش او شعرانم مفعول قلتوست از ده رو مبتداست است من رووات قصائدی خبرش ما به شباهتون تو و ده رو لامر رووات قصائدی عمل نمیکنه چرا چون نفیش به واسطه الله شکستش اگر نفیش به واسطه الله شکسته بشه عمل در مثل همون بالایی و ما انا الله سمحریون انا مبتدا سمحریون پس گفت من شاعرم فقط اینایی که تو دربار میان شعر میگن و به قول خودمون یه چیزی میگن و اسم شعر و شاعر روشون گذاشته شده همه اینا کپی منه. هیچ کدومشون شاهر نیستم؟ من شعر میگم اونا شعر می همه همشون راویان شعر من و من ده رو الا منروات غصاری دید ازا غلط و شعرن اصفحت ده رو منشم یه چیزی نداره یعنی واقعا بیت رو دو سه بار معنا کردم مباشر حالا نگاه کنید ما از همون بیت بالایی رو همین که من شاعرم و دیگران کپی از شعر من برمی دارند و شاعر شعرها خودشون نیستند بلکه شاعر منم و اونها خواننده شعر من میشن فسار بهی من لا یسیرو مشمرن و غنا بهی من لا یغنی مغربند. میگه شعر من موجزه میکنه کسی رو که نمیتونست را بره راش میدازه کسی رو هم که نمیتونست آواز بخونه آواز خونش میکنه فسار بهی من لا رو پس حرکت میکنه آه حرکت میکنه من لا رو کسی که نمیتونست حرکت کنه بیهی با این شعر من اون شعر. شعری که من میگم یه در رو را می همت میده مشمرن مشمر قبلا شمره داشتیم یعنی کمر همت بست مشمر یعنی کسی که کمر همت بست. من لا رو مشمرن مشمرن حال است از برای من پس حرکت میکنه کسی که حرکت نمیکنه اونم مشمرن این کسی که حرکت نمیکنه حرکت میکنه مشمرن با کمال همت بهی به واسطه شعر من و قنابهی و آواز میخونه با این شعر من من لا یقنی کسی که اصلا اهل آواز نبود مقردان، اونم میخونه چه زنان قررده یعنی چهچه زد چه خیلی آوازخونه درجه یک شد قررده گنا یعنی چه خونه قررده یعنی این چهچه چه زد و خیلی آوازخونی درجه یکی داشت به طلب آبو پس گفت چی؟ گفت کسی که نمیتونست از جاش بلند بشه همت نداشت رابره شعر من میادون را میدازه همت میده کسی که نمیتونست یک کلمه آواز بخونه شعر من میادون را بگیر خانندش میکنه مقردش میکنه شعر من داروست زمینگیر رو رامیندازه کسی رو که لال بود و یک حرف هم بزنه اصلا شیر لیمتوست بخونه جوری میکنه که چه چه بزن شو. پس عجیبه ها این بای بهی بای سببیتی اون من فائل است مشمرن هم حال از برای من یعنی کسی که قادره به حرکت کردن نبود در حالی که همت دارد همت دار شده به واسطه این شعر من حرکت میکنی میفته. و قن نابهی و آواز میخونه به این شعر من کسی که اصلا آواز نمیخونه اونم در حالی که چهر چهر میزنی موردن حال است از داره من این بیت رو و امثال این بیت رو بهش میگن کپی در معنا چی کپی در ایران الان نگاه کنید فسار و غنه فا و حرفت فر ساره و غنه بعد بهی بهی هر دوباری سببیت متعلق به فیلمت من مل فائلن لای و لا یسیرو سلس و زمیر فائلش و آید سلس مشمرن مغردن این دوتا حال هستن از داره من. یعنی بیت کپی در اعرابه یعنی یه مصرهش رو شما اعراب کنید حرکاتش رو بگید و مطلب رو بفهمید بیت دوم اینن کپیه هستیش کنه چیز جالی جال. خارج از اون نداره خب یعنی در واقع بیت موازنه در حراب بود. این برای اون بدش مثل تراصول سنگایی که گذاشتن با هم هم داره این هم بیت زیبایی بود که ایشون برای خودش بخره به کن حالا نگاه کنید شیفی که جالزه میگه عجزنی ازا اون شده ده شعرن فا این نما تا ایرول محکی و ولا آخرست صدا فکر میکنم این رو ف... تا حالا گفت چی؟ گفتش مردم روزگار راویان شعر من هم. من شعر میگم اونها میخونن تو به بعد. بعد گفته شعر من انقدر زیباست آدمی که اصلا شعر نمیتونست بخونه آوازخون میکنه آدمی که اصلا نمیتونست را بیفته راش میندازه خب بعد حالا میگه چی؟ میگه عجزنی عجاز یو و اجازتن یعنی جایزه دادن اون شدت یعنی شعر خوانده شد بر تو انشدت یعنی تو شعری خوانده شد من میگم انشدت تو یعنی شعری برام خونده شد انشدت تو یعنی خودم خوندم انشدت تو یعنی شعری برای من خوانده شد انشدت تو شعر فلان یعنی شعر فلان رو برای من خونده شد شعرا مفعول دوم انشدت است چون تا نافائل مفعول اولش میگه عجزنی جایزه رو بده به من که اذا اون شد تا شعران. هنگامی که خانده شده است بر تو شعری هر کسی اومد شعر خون بر تو پولو به اون نده سلر رو به اون نده نگرده بده من برد چرا؟ چرا هرکی اومد شعر خون برای تو شعر قشنگ خون بهش پول و سله نده سه پول و سله رو به من بده چون فعل نما چون اینها همهشون شعر رو من آوردن برای دارم نخونن. چون فعیل نما اند تا ایرال محکی زیرا من اون پرندهی هستم که تقلیدشو میکنم آخر آخرا از صدا و اون کسی دیگری که میاد شعر میخونه پژواکه ها؟ یه پرنده وقتی توی یک جایی میخواند مثل کسی که تو کوه یه صدایی میکنه کوه جوابشو میده کوه که نمیخونه اصل صدا حاله اینه میره تو کوه میپیچه برمیگرد میگه من اون پرنده‌ای هستم که محکیه درست شد حکایتشو کردن یعنی نقل قول ازش شده تقلیدشو کردن ولی آخرون اون نفری که آمده اون دیگری که آمده برای تو شعر خونده اون هشوها که این صدای منه ول از صدا درست شد خیلی زیبا گفتن. انگار اون پجوه که صدای من، پس عجزنی جایزه بده به من ازا اونشد شعرا یعنی هی نه تا شعرن انگامی که شعری خوانده شد برد این فعید چرا جایزه رو به من بده؟ زیرا فعید نماآن زیرا من اون پرندهی هستم که محکیه حکایت ازش شده تقلید ازش شده محکی یعنی تقلید شده من اون پرنده ای هستم که تقلید ازش شده یعنی صداشو در آوردن ولی آخر ها از صدا اون دفعه دوم که اومده داره میخونه اون پجوها که صدای منه هنر مال منه اون اومده تقلید کرده و داره اوریجینالش منم جایزاره بده به من کاری نیست که اومده تقلید کرده صدای منو داره میخواد انا از من فقط پرنده‌ای هستم که هنرش خواندن مال خودشه و دیگران هی یا از داره هم مفید حسره. یعنی من فقط اون پرنده‌ای هستم که اصل صدا مال اوست است ولا آخرو و و های دیگه اون کسان دیگه ای که میام میخونن بگید اصد کسی وا که صدای بخونه. مثل یه نفری که خوش صدا تو کوه بخونه خوش صداش تو کوه میپیچه میاد میرسه به ما ما جایزه باید به کوه بدیم حالا برای بار دوم اگه از کوه شی نه یا مثل کسی که صدا رو خونده روی یک کاستی زب شده آه؟ الان داره میخونه ما باید جایزه رو به اون کاست بدیم جایزه رو باید به اون فلش بدیم یا جایزه رو باید به خودمون بدیم این محکیه اون یکی ها مقلّدند این مقلّده عجزنی اذا ان شد تشعرا فنما عند طائر المحکی و لا اخر او از سفر من پرنده خوش صدایی هستم این که من پرنده خوش صدا یعنی بلبل خوش صدا من و بلبل خوش صدایی هستم که نقمه ها را خود می سراید و دیگران پژوا که صدای من آنها اونها چیز خاصی از خودشون ندارن هنر مال من خب درست شد از صدا گفتیم که سداست، یعنی اعکاس یعنی پشوک چیز خاصی توی این بیت هم ما ممید. خب این سه بیت آخر رو هم انشانالله هفته آینده براتون بخونم به همراه قصیده بعدیش انشانالله که با شعرهای متنم این آشنا شده مشک. و من هم قصدم اینه که در این شرایط این چنینی که هست شما لغت یاد بگیرید اعراب یاد بگیرید حرکات یاد بگیرید ترجمه یاد بگیرید و اون مقداری که بحث خودتون پراکنده هم نباشه تو یه جای خاصی باشه و انشاءالله تعالی همین عبیات خودمون رو هم از شما خواهیم پرسید و زیاد هم براتون سخت نخواهد بود اعتماس سوال داریم موفق و معییت باشید الله نگران هیچ چیزی هم نباشید استرس هم اصلا نداشته باشید و سلام علیکم و رحمت الله بده